مصنوی معنوی مولوی برنامه 144. حکایت آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان رخت تاجران بردند به کلی بعد از آن هیهای و پاسبانی میکرد پاسبانی خفت دزد اسباب برد رخت ها را زیر هر خاک فشار روز شد، بیدار شد آن کاروان، دید رفته رخت و سیم و اشتران. پس بدو گفتند، ای حارس، بگو که چه شد این رخت و این اسباب کو؟ گفت، دزدان آمدند اندر نقاب، رخت ها بردند از پیشم شتاب، قام گفتندش که ای چون تل ریگ پس چه کردی کی ای مرد ریگ. گفت من یک کس بودم ایشان گروه با صلاح و با شجاعت با شکوه. گفت اگر در جنگ کم بودت امید نعره زن که کریمان برجهید. گفت آن دم کارد بنمودند و تیغ که خمش ورنه کشیمد بی دریغ. آن زمان از ترس بستم من دهان، این زمان هیهای و فریاد و فغان. آن زمان بست آن دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. چون که عمرت بارد دیو فازهه، بی نمک باشد ععوز و فاتحه. گرچه باشد بی نمک، اکنون هنین هست غفلت بی نمک ترزان، یقین. همچنین هم بی نمک می نال نیز که زلیلان را نظر کن، ای عزیز، قادری بیگاه باشد یا بگاه، از تو چیز فوت کی شد. ای اله، شاه لا و علی ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم؟ حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام فعل و مکرو زرق زاهد و جواب زاهد مرغ را گفت آن مرغ این سزای او بود که فسون زاهدان را بشنود گفت زاهد نه، سزای آن نشاف، کو خورد مال یتیمان از گذاف. بعد از آن نوحگری آغاز کرد که فخ و سیاد لرزان شد زدرد. که از تناقزهای دل پشتم شکست. بر سرم جانا بیا میمال دست. زیر دست تو سرم را راحت است دست تو در شکر آیت است سایه خود از سر من بر مدار بیقرارم بیقرارم بیقرار خوابها بیزار شد از چشم من در غمت ای رشک سر و یاسمن گرنییم لایق چه باشد گردم ناسزای را بپرسی در غمه؟ مر آدم را خود چه استحقاق بود که بر او لطفت چونین درها گشود؟ خاک گرگین را کرم آسیب کرد ده گوهر از نور حس در جیب کرد. پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مرده از آن. توبه به توفیقت ای نور بلند چیست جز بر ریش توبه ریش خند؟ سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایستو تو ماه روشنی عیزتو ویران دکانو منزلم چون ننالم چون بی دلم چون گریزم زان که بی تو زنده نیست بی خداوندید بوده بنده نیست جان من بستان، تو ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. آشقم من برفن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. چون به شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و زهیر و ارتعاش. در حیا پنهان شدم همچون سجاف ناگهان بچهم از این زیر لحاف ای رفیقان راها را بست یار آهوی لنگی و او شیر شکار جزک تسلیم و رضا کوچاره در کف شیر نره خونخاره او ندارد خواب و خور چون آفتاب روحها را میکند بخورد و خواب که بیا من باش یا همخوی من تا ببینی در تجلی روی من ورنه ندیدی چون چونین شیدا شدی خاک بودی، طالب احیا شدی گرز بی سویت ندادست او علف چشم جانت چون بماندست آن طرف گربه بر سوراخ زان شد معتکف که از آن سوراخ او شد معتلف گربه دیگر همه گردد ببام کاز از شکار مرغ یا بید او تعام آن یکی را قبله شد جولاهگی ونیکی یکی حارس برای جامگی وان یکی بیکار و رو در لامکان که از آن سودادیش تو قوت جان کار او دارد که حق را شد مورید بحرکار او ز کار برید دیگران چون کودکان این روز چند تا به ترحال بازی میکنند. کنند خوابناک کوز یقزد می جهد دایه وسواس اشوش می دهد رو ای جان که نگذاری ما که کسی از خواب بچهاند ترا هم تو خود را برکنی از بیخ خواب همچو تشنه که شنود او بانگ آب بانگ آبم من به گوش تشنگان همچو باران میرسم از آسمان برج ای عاشق، براور استراب، بانگ آب و تشن و آنگاه خواب. حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعده معشوق به آن وساقی که اشارت کرده بود و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود. بود. محشوق آمد بحر انجاز وعده او را خفته یافت. جیبش پر جوز کرد و او را خفته گذاشت و بازگشت. آشق بود است در ایام پیش. پاسبان عهد اندر عهد خیش. سالها در بند وصل ماه خود. شاه مات و مات شاهنشاه خود. عاقبت جوینده یا بنده بود که فرج از صبر زاینده بود. گفت روز یار او کم شب بیا که بپختم از پیتو لو بیا. در فلان حجره نشین تا نیم شب تا بیایم نیم شب من به طلب. مرد قربان کرد و نانها بخش کرد. چون پدید آمد مهش از زیر گرد. شب در آن حجره نشست آن گرمدار بر امید وعده آن یار غار. بعد نصف اللیل آمد یار او. صادق و ادانه آن دلدار او عاشق خود را فتاده خفته دید اندک از آستین او درید گردکان چندش اندر جیب کرد که تو تفلی گیر این می میباز نرد چون سحر از خواب عاشق برجهید آستین و گردکانها را بدید گفت شاه ما همه صدق و وفاست آنچه بر ما میرسد آن هم زماست ای دل بی ما زین ایمنیم چون هرس بر بام چوبک می زنیم گردکان ما در این متن شکست هرچه گویی مزغم خود اندک است آزلا چندین سلای ماجرا پند کمده بعد از این دیوانه را من نخواهم اشوهی هجران شنود آزمودم چند خواهم آزمود هرچه غیر شورشو دیوانگیست، اندرین ره، دوری و بیگانگیست. هین به نه بر پایمان زنجیر را که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم گرد صد زنجیر آری بگسلم، اشق و ناموس ای برادر راست نیست بر در ناموس ای عاشق ماییست وقت آن آمد که من آریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم ای ادوی شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا ای ببسته خواب جان از جادویی سخت دلیارا را که در عالم توی هین گلوی سبر گیر و می فشار. تا خنک گردد دل عشق ای سوار تا نسوزم کی خنک گردد دلش، ای دل ما خاندان و منزلش، خانه خود را همه سوزی، بسوز، کیستان کس که بگوید لایجوز، خوش بسوز این خانه را، ای شیر ماست، خانه آشق چونین اولاتر است، بعد از این این سوز را قبله کنم، زان که شم ام من به سوزش روشنم. خواب را بگذار امشب، ای پدر، یک شب برکوی بی خوابان گذر، بنگر ها را که مجنون گشتند، همچو پروانه به وصلت کشتند. بنگرین کشتی خلقان غرق عشق اجده گشت گویی حلق عشق اجده ناپدید دل ربا اقل همچون که را او که ربا اقل هر عطار کاغه شد از او تبله ها ریخت اندر آب جو، رو کز این جو بر تا ابد لم یکن حقن له کفوان احد ای مزور، چشم بکشای و ببین چند گویی می ندانم آن و این از وبای زرق و محرومی برا در جهان حی و قیومی درا تا نمی بینم بینم شود. وین ندانم هات میدانم بود. بگذر از مستی و مستی بخش باش. زین تلوون ناقل کن در استباش. چند نازی تو بدین مستی، بس است. بر سر هر کوی چندان مست هست، گر دو عالم پر شود سرمست یار، جمله یک باشند آن یک نیست، خار، این ز بسیاری نیابد خاریه، خار که بود تن پرست ناریه گر جهان پر شد ز نور آفتاب کی بود خار آن تف خوش التهاب لیک با این جمله بالاتر خرام چون که ارز الله واسه بود و رام گرچه این مستی چو باز اشهب است برتر از وی در زمین قاض هست رو سرافیل شوند در امتیاز در دمنده روح و مست و مست ساز مست را چون دل مزاح اندیش شد این ندانم وان ندانم پیشه شد این ندانم وان ندانم بهر چیست تا بگویی آنکه می دانیم کیست نفی بهر سبد باشد در سخون نفی بگذار و ز سبد آغاز کن نیست اینو نیست آن، هین واگذار، آنکه آن هست آن است، آن را پیش آر، نفی بگذار و همان هستی پرست، این در آموزی پدر زان ترک ماست. استدعای امیر چرک مخمور مطرب را با وقت سبو می در خم اسرار بدان می جوشد تا هر که مجرد است از آن می نوشد قال الله تعالی ان الابرار یشربون این می که تو می خوری حرام است ما مای نخوریم جز حلاله. جهد کن تازه نیست هست شوی، و شراب خدای مست شوی. آجمی ترک سحر آگاه شد، و از خمار خمر مطرب خواه شد. مطرب جان، مونس مستان بود نقل و قوت و قوت مست آن بود مطرب را سوی مستی کشید باز مستی از دم مطرب چشید آن شراب حق بدان مطرب برد وین شراب تن از این مطرب چرد. هر دوگر یک نام دارد در سخن، لیک شتان این هستن تا آن هستن. اشتباه هست لفظی در بیان، لیک خودکو آسمان تا ریسمان. اشتراک لفظ دایم رهزن است. اشتراک گبر و مؤمن در تن است. جسمها چون کوزه های بست سر. تا که در هر کوزه چه بود آن نگر. کوزه آن تن پر از آب حیات. کوزه این تن پر از زهر مامات. گر به مظروفش نظر داری، شهی. ور به ظرفش بنگری، تو گمرهی. لفظ را ماننده این جسم دان. معنیش را در درون مانند جان. دیده تن دائمان تنبین بود، دیده جان، جان پرفنبین بود. پس نقش لفظهای های مصنوی صورتی زال است و حادی معنوی. در نوبی فرمود کین این قرآن زدل حادی بعض و بعض را مزل، الله الله چون که گفت می پیش عارف کی بود معدوم شی فهم تو چون بادهی شیطان بود کی تو را وحمه می رحمان بود این دو بازند مطرب با شراب این بدان آن بدین آرد شتاب، پرخماران از دم مطرب چرند، مطربانشان سوی میخانه برند. آن سر میدان و این پایان اوست، دل شده چون گوی در چوگان اوست، در سر آن چه هست، گوش آنجا رود. در سر ار سفراست، آن سودا شود. بعد از آن این دو به بیهوشی روند، والد و مولود آنجا یک شوند. چون که کردند آشتی، شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد مطربا غازید بیت خوابناک که نل کاسا یا من لا اراک انت وجهی لا عجب ان لا ارا غایت القرب حجاب الاشتباه أنت عقلي لا عجب إن لم أراك من وفور الالتباس المشتبك جئت أقرب أنت من حبل الوريد لم أقل يا يا نداء بل غالتهم أنادي في القفار كي و کتم من معی ممن اغار در آمدن زریر در خانه مصطفی علیه السلام و گریختن آیشه رضی الله عنها از پیش زریر و گفتن رسول علیه السلام که چه می گریزی او ترا نمی بیند و جواب دادن آیشه رضی الله عنها رسول را صلی الله علیه وسلم اندر آمد پیش پیغمبر زریر که نوا بخش تنور هرخمیر ای تو میر آب و من مستسقیم مستغاس المستغاس ای ساقیم چون درآمد آن زریر از در شتاب آیشه بگریخت بهر احتجاب زان که واقف بود آن خاتون پاک از غیوری رسول رشکناک هر که زیباتر بود رشکش فزون زان که رشک از ناز خیزد یا بنون گندپیران شوی را قما دهند چون که از زشتی و پیری آگهند. چون جمال احمدی در هر دو کون کی است، ای فری از دانیش آن نازهای هر دو کون او را رسد غیرت آن خورشید سد تو را رسد که درافگندم گندم به کیبان گوی را در کشید ای اختران هی روی را در شعاع به نظیرم لا شوید ورنه پیش نور من رسوا شوید از کرم من هر شب غایب شوم، کی روم الا نمایم که روم. تا شما به من شب خفاشوار پرزنان پرید پر گرد این مطار. همچو تاووسان پر ارزه کنید. باز مست و سرکش و معجب شوید. آن پای خود را زشت ساز. همچو چارق کو بود شمع ایاز. رو نمایم صبح بهر گوشمال تا نگردید از منی زهل شمال ترک آن کن که دراز است آن سخان نعی کرده است از درازی امر کن